مصنوی معنوی مولوی برنامه 146 تمثیل مرد حریس نابینند رزاقی حق را و خزاین رحمت او را به موری که در خرمنگاه بزرگ با دانه گندم میکوشد و میجوشد و می لرزد و به تحجیل میکشد و ساعت آن خرمن را نمیبیند. مور بر دانه بدان لرزان شود که ز خرمنهای خوش اعما بود، می کشد آن دانه را با حرس و بیم که نمی بیند چنان چاش کریم. صاحب خرمن همه گوید که هی ای زکوری پیش تو معدوم شی. تو ز های ما آن دیده که در آن دانه بجان پیچیده ای. ای به صورت زره کیوان را ببین مور لنگی رو سلیمان را ببین تو نه این جسم تو آن دیده وارهی از جسم گر جان دیده آدمی دید است باقی گشت و پوست هرچه چشمش دیده است آن چیز اوست. که را غرقه کند یک خم زنم. چشم خم چون باز باشد سوی یم. چون به دریا را شد از جان خم خم با جیهون برارد اشتلم. زان سبب قل گفته دریا بود هرچه نطق احمدی گویا بود گفته او جمله در بر بوز که دلش را بود در دریا نفوز داد دریا چون زخم ما بود چه عجب در ماهی دریا بود چشم حس افسارد بر نقش ممر توش ممر می بینی و او مستقر این دوی اوصاف دید احول است ورنه اول آخر آخر اول است هی ز چه معلوم گردد این؟ ب بعس را جو کم کنند در بس بعث. بعث شرط روز بس اول مردن است زانکه بس از مرده زنده کردن است جمله عالم زین غلط کردند راه که از ادم ترسند و آن آمد پناه از کجا جوییم علم از ترک علم از کجا جوییم سلم از ترک سلم از کجا جوییم هست از ترک هست از کجا جوییم سیب از ترک دست هم تو تانی کرد یا نعم مؤین دیده معدوم بین را هست بین. دیده کو از عدم آمد پدید، ذات هستی را همه معدوم دید. این جهان منتظم محشر شود، گرد و دیده مبدل و انور شود. زان نماید این حقایق ناتمام که بر این خامان بود فهمش حرام نعمت جنات خوش بر دوزخی شد محرم گرچه حق آمد سخی در دهانش تلخ آید شهد خالد چون نبود از وافیان در اهده خلد مر شما نیز در سوداگری دست کی جنبد چون نبود مشتری کی نظاره اهل بخریدن بود آن نظاره گول گردیدن بود پرسپرسان کین بچند و آن بچند از پای تعبیر وقت و ریشخند از ملولی می خواهد ز تو آن کس مشتری و کالجو کاله را صد بار دید و باز داد جامه کی پیمود و پیمود باد کو قدوم و کر و فر مشتری کو مزاه گنگلی سرسری چون که در ملکش نباشد حبه جز پای گنگل چه جوید جُبه‌ی در تجارت نیستش سرمایه پس چه شخص زشت او چه سایه مایه در بازار این دنیا زر است مایه آنجا عشق و دوچشم تر هر که او بی مایه بازار رفت، عمر رفت و بازگشت و خام تفت. هی hey, کجا بودی برادر؟ هیچ جا. هی hey, چه پختی بهر خوردن؟ هیچ با. مشتری شو تا به جنبد دست من، لال زاید معدن آبست من مشتری گرچه که سست و بارد است دعوت دین کن که دعوت وارد است باز پران کن همام روح گیر در ره دعوت طریق نوح گیر خدمت می کن برای کردگار، با قبول و رد خلقانت، چکار؟ داستان آن شخص که بردر سرای نیمشب سهوری می زد، همسایه او را گفت که آخر نیمشب است، سحر نیست، و دیگران که در این سرای کسی نیست، بهر کی میزنی؟ و جواب گفتن مطرب او را آن یکی میزد سهوری بردره درگه بود و رواق مهتره نیم شب میزد سهوری را بجد گفت او را قائل که مستمد اولا وقت سهر زن این سهور، نیم شب نبود گهه این شر و شور دیگران که فهم کن ای بل که در این خانه درون خود هست کس کس در اینجا جا نیست جزدی و پری، روزگار خود چی یاوه میبری. بهر گوش میزنی دف گوش کو هوش باید تا بداند هوش کو گفت گفتی بشنو از چاکر جواب تا نمانی در تحیر واستراب گرچه هست این دم برای تو نیم شب نزد من نزدیک شد صبح تراب هر شکست پیش من پیروز شد جمله شبها پیش چشمم روز شد پیش تو خون است آب رود نیل نزد من خون نیست آب است ای نبیل در حق تو آهن است آن و رخام پیش داوود نبی موم است و رام پیش تو که بس گران است و جماد مطرب است او پیش داوود استاد پیش تو آن سنگ ریزه ساکت است پیش احمد او فسیح و قانت است پیش تو استون مسجد مرده است پیش احمد آشق دل است جمله اجزای جهان پیش عوام مرده و پیش خدا دانا و رام آنچه گفتی کن در این خانه و سرا، نیست کس چون میزنی این تاب را، بهر حق این خلق زرها میدهند. سد اساس خیر و مسجد مینهند. مالتن در راه حج دوردست، خوش همی بازند چون اشاق ماست، هیچ میگویند گویند خانه تهیست، بلکه صاحب خانه جان مختبی است. پر همه بیند سرای دوست را، آنکه از نور اله استش زیا. بس سرای پر ز جمع و انبوهی، پیش چشم آقبت بینان، تهی، هر که را خواهی تو در کعبه بجو تا بروید در زمان او پیشرو رو، صورت کو فاخر و عالی بود، او زبیت الله کی خالی بود، او بود حاضر منزه از رتاج، باقی مردم، برای احتیاج هیچ می گویند که این لبایک ها بی ندای می کنیم آخر چرا بلکه توفیق که لبایک آورد هست هر لحظه ندای از احد من ببودانم که این قصر و سرا بزم جان افتاد و خاکش کیمیا. مس خود را بر طریق زیر و بم تا ابد بر کیمیایش میزنم. تا بجوشد زینچونین زرب سهور در درفشانی و بخشایش بحور، خلق در صف قتال و کارزار، جان همی بازند بهره کردگار. آن یکی اندر بلا، ایوب وار، بندگر در صابری یعقوب وار. صد هزاران خلق تشنه و مستمند، بهر حق از تم جهده می کنند، من هم از بحر خداوند غفور می زنم بردر با امیدش سهور. مشتری خواهی که از وی زر بری، بهز حق کی باشد ایدل مشتری. می خرد از مالت انبان نجس می دهد نور زمیر مقتبس. می ستاند این یخ جسم فنا می دهد ملک برون از وهم ما می ستاند قطره ز عشق می دهد کوسر که آرد قند رشک می ستاند آه پرسودا و دود میدهد هر آه را صد جا سود باد آه کبر اشک چشم راند رااند،مرخیل را بدان اواه خواند. هین در این بازار گرم بینذیر، کهنه ها بفروش و ملک نقدگیر. بر تو را، شکی و ریب ره زند تاجران انبیا را کن سند. بس که افزود آن شاهنشاه بختشان، کوه نتواند کشیدن رختشان. قصه احد احد گفتن بلال، در هر حجاز از محبت مصطفی علیه السلام، در آن چاشتگاه ها که خاجهش از تعصب جهود به شاخ خارش میزد پیش آفتاب حجاز و از زخم خون از تن بلال برمی جوشید. از او اهد اهد می جست به قصد او. چنان که از دردمندان دیگر ناله جهد بی قصت زیرا که از درد عشق ممتلی بود احتمام درد خار را مدخل نبود همچون صحرای فرعون و جرجیس و غیرهم لا یعدو و لا یحسا. تن فدای خار میکرد آن بلال خواجهش میزد برای گوشمال که چرا تو یاد احمد میکنی بنده بد منکر دین منی میزدن در آفتابش او بخار او اهد میگفت بحر افتخار تا که صدیق آن طرف بر میگذشت آن اهد گفتن به گوش او برفت. چشم او پر آب شد، دل پر انا. زان اهد می یافت بوی آشنا. بعد از آن خلوت بدیدش، پند داد که جهودان خفیه می دار اعتقاد. آلم و سر است. پنهان دار کام. گفت کردم تو بپیشت ای همام. روز دیگر از پگه صدیق تفت آن طرف از بحر کار می برفت. باز احد بشنید و زرب زخم خار. برف روزید از دلش، سوز و شرار باز پندش داد بازو توبه کرد عشق آمد توبه او را بخورد توبه کردن زینمت بسیار شد عاقبت از توبه او بیزار شد فاش کرد اسپارد تن را در بلا کی محمد، ای ادوی توبه ها، ای تن من و ای رگ من پرز تو، توبه را گنجا کجا باشد درو، توبه را زین پس ز دل بیرون کنم، از حیات خالد توبه چون کنم، عشق خهار است و من مقهور عشق چون شکر شیرین شدم از شور عشق برگ کاهم پیش تو ای تند باد من چه که کجا خواهم فتاد گر هلالم گر بلالم می دوم مقتدی آفتابت می شوم. ماه را با زفتی و زاری چکار؟ در پای خورشید پوید سایبار با قضا هر کو قرار میدهد ریش خنده سبلت خود میکند. کاه برگ پیش باد آنگه قرار راست خیزی و آنگهانی از مکار گربه در انبانم اندر دست عشق یک دم بالا و یک دم پست عشق او همه گرداندم بر گرد سر نه بزیر آرام دارم، نه زبر آشقان در سیل تون دفتادند بر قضای عشق دل بنهادند همچو سنگ آسیا اندر مدار روز و شب گردان و نالان قرار. گردشش بر جوی جویان شاهد است، تا نگوید کس که آنجو راکد است. گر نمی بینی تو جو را در کمین، گردش دولاب گردونی ببین. چون قرار نیست گردون را از او ای دل، اختروار آرام مجو گر زنی در شاخ دست هلد هر کجا پیوند سازی بسکلد گر نمی بینی تو تدویر قدر در عناصر جوشش و گردش نگر زان که گردش های آن خاشاک و کف باشد از غلیان بحر با شرف باد سرگردان ببینند در خروش پیش امرش موج دریا بین جوش آفتاب و ماه دو گاب خراس گرد می گردند و می دارند پاس اختران هم خانه خانه می دوند مرکب هر سعد و نحس می شوند اختران چرخ گردورند هی وین حواست کاهلند و ساست پی اختران چشم و گوش و هوش ما شب کجایند و به بیداری کجا؟ گاه در سعد و وسال و دلخوشی، گاه در نحس و فراق و هوشی. ماه گردون چون در این گردیدن است، گاه تاریک و زمان روشن است، گه بهار و صیف همچون شهد و شیر گه سیاستگاه برف و زمهریر چونکه کلیات پیش او چگوست سخرا و سجده کنه چوگان اوست تو که یک جزوی دلا زین صد هزار چون نباشی پیش حکمش ب قرار چون سطوری باش در حکم امیر گه در آخر حبس، گاه در مسیر چونکه بر می خط ببندد بسته باش چون که بک شاید برو برجسته باش. در فلک کجم جهد در سیه روی کسوفش میدهد کز زنب پرهیز کن هین هوش دار تا نگردی تو سیاهرو د دگوار ابر را هم زیانه آتشین میزنندش کانچنان رو نا چونین، بر فلانوادی ببار، این سو مبار، گوش مالش میدهد که گوش دار، عقل تو از آفتاب بیش نیست، آن فکری که نهی آمد، ما ایست، کجمنه ای عقل، تو هم، گام خیش تا نیاید آن کسوف رو به پیش چون گناه کم بود نیم آفتاب من بینی و نیم نورتاب که به قدر جرم میگیرم تو را این بود تقریر در داد و جزاء خواه نیک و، خواه بد، فاش و ستیر، بر همه اشیا سمیعیم و بسیر. زین گذر کن ای پدر، نوروز شد. خلق از خلاق خوش خوشپدفوز شد. باز آمد آب جان در جوی ما، باز آمد شاه ما در کوی ما. می خرامد بخت و دامن می کشد. نوبت تو به شکستن می زند. تو را بار دگر سیلاب برد. فرصت آمد پاسبان را خواب برد. هر خمار مست گشت و باده خورد رخت را امشب گرو خواهیم کرد زان شراب لعل جان جان فضا لعل اندر لال، اندر لال ما باز خرم گشت مجلس دلفروز خیز دفعه چشم بد اسپند سوز. نعره مستان خوش می آیدم. تا ابد جانا چونین می بایدم. نک با بلال یار شد. زخم خار او را گل و گلنار شد. گرز زخم خار تن غربال شد. جان و جسمم گلشن اقبال شد. تن با پیش زخم خار آن جهود. جان من مست و خراب آن ودود. بوی جان سوی جانم میرسد. بوی یار مهربانم میرسد. از سوی میراج، آمد مصطفی بر بلالش حبزالی حبزا، چون که صدیق از بلال دم درست این شنید از توبه او دست شست.